همواره تحقق معجزگون وعده های الهی نشانه امید است که تحقق وعده های بزرگتر را نوید میدهد حکایت قرآن از دو وعده ای که خداوند به مادر موسی داد نمونه ای از این تاکتیک است در آن هنگامه دشوار که فرمان به آوبت کندن صندوق حامل موسی ایل شد در ماجرای حضرت موسی وقتی که در آن حکومت استبدادی ظالمانه فرعونی این مادر بچه پسری رو به دنیا آورد و مسلم است این بچه پسر را خواهند کشت این مادر موند که چه بکند اینجا وحی الهی به این مادر رسید خیلی مهم است مادر چطور طاقت میآورد بچه خود را داخل یک صندوقی مثلا بگذارد او رو بیاندازد داخل ندخانه خموشانی که داره میره اما وحی الهی به مادر اینجور گفت این نه دوتا بعده اینجا به این مادر خدای متعال دار اول اینکه این بچه را به تو بر بیگردنی. دوم اینکه او را از مرسلین قرار میدهیم فرعد از ناه و امه این بچه را برگردوندیم به مادرش کهی تقر عینها ولا تحزنه تا چشمش روشن شود محضون نشود ولی تعلمه ان بعد الله حق بخشی از بعده را خدای متعال نقد در اختیار مادر موسی گذاشت تا به اون وعده نسیه یقین کند وعده الهی این است که ملت مسلمان را عزیز کند خب این یک شبه که ممکن نیست بدون تلاش و عمل هم ممکن نیست وعده الهی این بود که هر ملتی که در راه خدا مبارزه کند به ایمان داشته باشد چی بشود؟ بسیار خوب شما ملت ایران ایمان داشتید مبارزه کردید پیروز شد اون روز که اسلام در ایران پیروز شد و توانست دج آمریکا و سحیونیزم را در یکی از حساس ترین کشورهای این منطقه بسیار حساس فتح کند اهل عبرت و حکمت دانستند که اگر صبر و بصیرت را به کار گیرند فتوحات دیگر پی در پی فرا خواهد رسید و فرا رسید الله, اکبر، الله, اکبر، الله, اکبر، الله, اکبر، الله اکبر. و صبر و بسر و اعتماد به بعده ولی الله من ينصره ان الله لقوي عزيز خواهد توانست این مسیر افتخار را تا رسیدن به قلعه تمدن اسلامی در برابر امت اسلامی هموار عزیز،